بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والشيد المرسلين والي وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن أبادتي سيكونون جهنم داخلي ودليل الفوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه فأيي كما جلستي قداشبش بحث من خاتمين دارين فارموديه بارباردقارموت وقال ربكم بارباردقارة ميقويات خطاب معها ادعونی از لكم مرا صدا بزنی فریاد بزنی از من بخواهید تا استجابت بکنم بحث دعا هست ان استکبرون عن عبادتی انهی کی استکبار می چطور استکبار می از از دعا ان الذين عن عبادتی که عبادت گفتیم دونو هم دعا و هم عبادت ها دو تا دعا و عبادت, عبادت مسئله است و عبادت معمولا هر که دعا وقتی گفته میشه منظور سواله خاصنه خاصارمون از خداوند و دعای عبادت همون نماز ها و زب شو نمیدیرم نداری که انسان به خداوند انجام میده اینجا بعد از اینکه خاص را آورد دعا و اونم صدا زدن اومد در زیر یک عمومی واردش کرد و اونم اصل عبادت چون گفتیم دعا، و هو عبادت. چون دعا خود عبادت هست اومد زیر مجموعه عبادت واردش کرد که عبادت، عبادت مسئلت داریم و عبادت بدنی که شامل هرچک عبادت ها عبادت بدنی داری، مالی داری که همشون بحث خود عبادته یعنی اصل عبادته که ما انجام میدیم برای خداوند غیر از اون دایم مساله این الذين استکبرون عن عبادتی استکبار میوازن نوع استکبار هم یا اینکه نمیخوان سر به به الله بزنن یا اینکه با خداوند شریق قائل می یعنی به خداوند شریک قائل میشه یعنی اون چیزی که خاص خداونده برای مخلوقم هم همون کار رو انجام میدن سید خون جهنم داخلی جای اونها کجاست جهنمه حالا چه داره این قسمت و مبقی. نو کنید اولین مسئله ای که اینجا مؤلف بیان میکنه دعا هست و بعدم در ضمن دعا فرمودید خدا میو ان فلا تدعوا مع الله احد مساجد مال خداست همونطوری که عبادت عبادت بدنی برای خدا انجام میشه پس دعا هم همونطور فقط برای خدا انجام بدید همونطور که نمازتون برای خداست دعاتون برای خدا, دعا خدا باشه خب این دعا بود بعد از این که بحث دعا اومد بیان کرد که دعا عبادته خطامش داد به فرمودی خدا برد این نلدین عن عبادتی الان اینجا اینو میخواد بگه همونطور که دعاء عبادت بود ترس از خدا تمع در خدا برد رجا ترس و نمیدونم خشوع و نمیدونم انواع اون مسائل قلبی اون عبادت های قلبی که از ما میزنه زیر مجموعه عبادت داخل میشه این للدین استکبرونن عبادتی اونهایی که استکبار میوزن گفتیم یه یا با انجام ندادنش برای خدا یا با شریک قائل شدم برای خداوند یه کسی دیگر رو با خداوند شریک قرار بدن پس معلیف این عبارت رو خاتمه داد فرموده خداوند این للدین استکبرونن عبادتی که غیر از دعا بقیه امور عبادی هم در زیر مجموعه اون وارد بکنه حالا چه دلیلی هست چون ما در تعریف عبادت هم قبلا گفتیم عبادت اون چیزی هست که خداوند دوست داره و اله کرده بر ما تشویق کرده با گفتنش با امرش این واضحه اون چیزی که خداوند در قرآن بهش اهم بکنه عبادت دیگه چیزی که خدا دوست داره خدا آیا در مسائل قومی، امور عمرکونی آیا خداوند به چیزی که بده دستور میده هیچ خداوند بدی دستور نمیده خداوند همیشه دستورش به نیکی هست خداوند همیشه دستورش به نیکی هست خب اینجا میاد معلف میاد و دلیل خوفی قوله تعالا فلا تخافوهم و خافون ام کنتم مؤمنین فلا تخافوهم از هانا نترسید از مشکینه نترسید. و خافون ام کنتم مؤمنین از من بتأسیس و از من بترسید. رفقت اول دستور میده که از خدا بتأسیت آیا ترس از خدا عبادت عبادت نیست یک عبادت قلبیه یک عبادت قلبی است هرچند که خود ترس مچن نداری یک ترس داریم ترس طبیعی انسان از شیری می ترسد. سان از پلنگ میترسه از اقرب میترسه از مار بعضی هم از سوسک میترس آیا این ترسشون شرکه و این ترسشون کفره چون اینجا از مخلوق ترسیدن خیلی الا این اینکه، اون ترس ترسی باشه که مانه از عبادت بشه یعنی انسان در جنگ از دشمن به طوری میترسه که حتی حاضر نیست که نماز خوف را هم بخونه طور, طوری از مدیرش میترسه که ریش نداره مثلا بالفرس نگه نه منو بیرو میکنم از کی میترسه؟ از مخلوق میترسه لطاعت المخلوق هم فی معصیت الخالق داره معصیت خالق را میکنه بقاطر ترس از مخلوق بقاطر ترس از مخلوق اینجا حرامه اینجا مرتکب حرام شده اون شخص چرا؟ چون چه ترسه, در... ترسه از مخلوق را مقدم کرده بر ترس از خالق فلا تخافوهم از اونها نترسید با خافونید از من نترس این تو مؤمنید اگر مؤمنی، لیکن لازمه ای ایمانه لازمه ای ایمانمون این که ترسمون از خدا باشه یک قصه نخو میشه در بحث ترس یکی یک شخصی یک کسی بهش پول میده میاد گدایی میکنه بعد اون شخص بهش پول میده بعد اون شخص اون شخصی که گدایی میکرده میگه میبینه پول کمه بعد میگه که به حق این ولی به حق این که اینجا خوابیده اون ولی اولیا حسالا قبل نم پیش خودمون بود در این رسم رسوم بود ولی الان الحمدلله منقرض شده قبلا زیاد بود این از برکت دعوت صاحب بنیان این مدرسه هست در این منطقه خودمون خصوصا در جنوب تیم ها و این شرقیات از زیر رفته خب میاد میگه به حق این ولی بیشتر بدم بده بعد اون طرف میگه که بیا اون پولی که بدادم بیا بعد پول میگیره دیگه فکر کرده اون طرف حالا پول بیشتر بهش میده خب بعد اون پول ازش میگیره دوباره پول بیشتر بهش نمیده سوار ماشین میشه راننده ماشین خیلی حساب میبرده از اون ولی هی hey, تو راه میگه اللهم مسر خدایا صفرم کن خدای خدا نه ای ولی تتر ممکن ای ولی تتر ممکن هی دعا میکرد که ای ولی دیگه سر ما گوزاشو که ما اشتباه کردیم ما غلطی کردیم این شخصی که کنارش بوده که ولفرز اینجورین عکسها این داده این شخص خلالا نگران میشه الان این شخص داره میترسه از کی داره از اون ولی داره میترسه در اون چیزی که ولی دستش نمیرسه قدرتش توانش نمیرسه بعد دیگه به مقصد رسید مونا خود اون دیه نمیگه یعنی که ما به مقصد رسیدیم بعد گفتم که چی شد چیزی ممکن است اونم مریض شیدین نه بلای میاد چیزی نشدین شما یکی میگفتید که بلا سرمون میاد نمیدونم میدونم اگر ولی اگر ولی نمیدونم فلان بکنه روزی دعا میکردید گفت که نه ولی حلیمه بردباره صبوره بخاطر همین عذابمون نداد بخاطر همین ما را عقوبت نکرد نگاه بکنید انسان اگر در ذهابت ابراهیم امشب این آیه‌ای که تلاوت شد در مسجد بحث ابراهیم خلیل الرحمن و کیف اخاف ما اشرتكم ولا تخافوا تخافون انكم اشرتتم بالله وكيف أخاف ما أشركتم؟ أزمن كذيك شو ما شاركوا ورد وليه أو هر كسي قرارش دارين. هر كسي مي وما أشركتم. هر كسي ما أشركتم. وكيف أخافوا ما أشركتم؟ ولا تخافون. ولا تخافون أنكم لكم أشركتم إلا دارتد. في شو من بتعرفن؟ أزكم موردة. أخضانه تعرفن إن ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ كدهم يق. امنیتشون بالاتره. اون کسی که از خدا میترسه و تمامی قدرت هم دست خداونده یا اون کسی که از ولی میترسه ایل فریق این حق بالام کدوم یک این کدوم تعلمون اگر میدونید اگر با علف صحبت میکنید با دلیل با مدرک اگر روش دلیل دارید کدوم یک صحیح تره کدوم یک برحقه بحثیدی که اون ولی قدرت و توانش نداره که بیات ما رو نجات بده ما را سطر بکنه اینجا این ترس, ترس شرکی هست ترس کفری هست که از اون مرتبه حرام دیگه مورای چون قسمت اولی ترس گفتیم ترس طبیعی اگر اون ترس طبیعی سبب بشه که ما مرتکب حرام بشیم اونجا بشه کی؟ حرام مرتکب حرام بشه نماز نکنیم یا نماز به دیر بخونیم یا سبب سبب بشه که ما معصیتی انجام بدیم اینها حرامه اما اگر سبب بشه اون چیزی که سبب نیست و سبب قرار بدیم اون کسی که الان مثلا زیر قاپ خویده نمیتونه بیرون بیاد خداون میگه ام لهم ایدین یبطشون بها ام لهم ارذن یمشون بیا. ام لهم ایدین یبطشون فادران فدر المجازر خاک راه برن دست اون از زیر خاک بیرون میاد خدا نه فی اسباب ازشون کرده کسی که نمیتونه کسی که نداره در توانش نیست چرا ترسش میترسی چرا ازش می حساب میبری و کیف؟ و کیفا اخاف ما اشوکتم چطور ازشون میترسم چرا اصلا مؤمن بترسه اگر اینجا از اون کسی که توانش نداره اون کسی که حالا شاید مثلا یک شخص بگه که مثلا بالعف خب چه فرقی میکنه انسانی که مثلا از وس میترسه خب کم دیگه توان عزیتی که نداره ولی خب انسان ازش میترسه نه این نوع ترس طرز دیگر هست این این نوع ترس ترس غیبی و تعبدی هست داره به ولی اثبات قدرتی ماورای طبیعت می کنه اثباب دا... یعنی با اون کارش اثبات یک توانمندی خاصی یک قدرت خاصی که جز از خالق بر نمیاد داره به اون نسبت میده. از اینکه بیاد نمی آزار اذیتش بکنه مریضش بکنه خاطر همین مشرکین این چیلی مشرکی شبههی داشتن یعنی این ای که در میان مردم خودمون بود قبلا، که ولی ضرر میرسونه ولی اگر چیزی گفتی نمیدونم مصیبت بهت وارد میکنه همونطور که به هود گفتن قوم هود گفتن این نقول و ایلا اعتراک بعض آلیهتنا بسو یعنی شد این مریضی و دردی که داری به خاطر بدوی به نفت آلهه که داری اون آله این ضرر زیان بهت رسوندن این شرکه این چیزی که ابراهیم فلی رحمه میگه و کیف اخاف ما اشرکتم شرکه این از مخلوق، از بوت از مرده، از ولی، این نوع ترس رو گذاشت. اسمش چیه؟ ابراهیم؟ شرک. و کیف اخافو اخاف ما اشرتم بیهیم. اون چیزی که شریک به خدا قرار دادی. چونوی به ترسد؟ چونونا میترسیدن. اونجایی که نباید بیترسیدن باید میترسد. این نوع ترس ترس شرکی هست. هرچند که جاهای این ترس شاید منجر بشه که انسان، عبادتی را نسبت به اون از باب ترس انجام بده این دیگه بدتر زبش بکنه به اون مرده زبش بکنه به جن حالا به خاطر اینکه اون جن بیاد مشکل زناشوییشو حل بکنه مشکل زناشویی حل بکنه یا نمیدونم تلاهای گمشدهشو پیدا بکنه این زبش و این قرمانی که خاص خداوند این عبادتی که برای خدا فقط انجام میده، انسان یا از باب ترس یا از باب یا از باب رحمت بیاد انجام بده برای مخلوق تسلل ربک انحار نحر برای خداونده ذبح برای خداونده انسان بیاد این نحری که برای خداونده ذبحی که برای خداونده قربانی و اون سرزدن هیبونی که فقط برای خداوند انسان بیاد به مخلوقی انجام بده خصوصا از سر بیاد اون انجام بده تا اینکه اون از اثر این که شاید مصیبتی ضرری بهش برسه بیاد به اون مخلوق اون ولی انجام بده تا اون که اون ولی zarar رو زیان بهش نرسونه پس ترس یک عبادت قلبی هست که باید خاص خداوند باشه مگر اون ترسی که طبیعی و فطری هست که درش مشکلی نیست معاده اون یا حرامه یا شرک اکبره و میشه هم شرک ازغر باشه و میشه هم شرک ازغر باشه اون ترسی که خصوصا در مقابل انجام دادن و نافرمانی از دستورات خداوند باشه یعنی انسان در یک ای که اونجا باید فقط از خدا بترسه بیاد از مخلوق خدا بترسه اینجا شاید منجر بشه که شخص مثل کسی که از سرس پدرش از سرس پدرش بیاد نمازش درست بکنه این اخبه و معقاقه علیکم از شرکو الازغر به در شرک خفی من بیشترین شرکی که از رو خفیه ریا هست که چیه اون ریا حالا یک نوع ریا این که بخواد جلب رضایت طرف بکنه. یک نوع دیگرش از اون ریاکاری اینی که از ترس بیاد نمازشو خوب بکنه. همونطور که رسول الله میگه میگه شخصی نگاه، نماز گذار میکنه، بیاد نمازشو زیبا بکنه، به خاطر که طرف مقابل نگاهش میکنه. این دیگه شرک عذاره. اینو ترس که منجر بشه ما عبادات منو تعظیم اینو ترس شرک عذاره که انسان باید ازش برخوردار باشه. پس از جمله اموری که در ضمن عبادت ها وارد میشه ترس ترسی هست که باید خاست خداوند باشه و انسان باید برحذر باشه که این نوع ترس را خاست خداوند بکنه این اون دو نوع خصوصاً بحث ترس در عبادت و ترس در امور سری در امور غیبی انسان باید خاست خداوند داره نه در امور فطری و اما رجاء و دلیل رجاء قوله تعالی فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا رجا ما جلسه گذشته گفتیم رجا تمعه فروتنی و تمعه یعنی زلت رجا در مقابل یک شخص تا اینکه که مشکلش حل بشه مثلا مریض شفا بیا به رجا یعنی امید داره اون شخص امید داشتن نسبت به یک شخص یک فرد که مشکل حل بشه این اصلش امید. امید داشتن به مثلا اینکه ما وارد بهش بشیم. الان میخواد اینجا معلف ثابت بکنه که امیدم یک نوع عبادت قلبی هست. نه اون امید طبیعی که بین بشریت هست. مثل دوست داشتن فطری که ما گفتیم به این پدر مادرمون داریم. اون مسائل فطری انسان محاسبه نمیشه. اون مسائلی که در بحث عبادت وارد میشه اون جایی که در بحث بر میگرده به به دعوا فقط و ترس از میت ولی یا به امید داشتن نسبت به اون ولی اونجا هست که مذموم و اونجا هست که اشکال در توشید ما ایجاد میکنه خب اصطلاحی که فرمودید خداوند نفر من کان یا رجول قاء اون کسانی که تمع دارن اون کسانی که تمع دارن به ملاقات پروردگارشون به رضایت فروردگارشون را بخوام به لازم قول بگیریم که لقای فروردگار ما به اشتقاد داریم که بزرگترین نعمتی که خداوند به مؤمنی میده در روز روزقیامت لقای فروردگاره دیدار فروردگاره فلیع من عملا صالحه اونهایی که امید دارن عمل صالح انجام بدن و لا یشرتو به عبادت ربیه احدا به شرکم اینجا خداوند دستور به رجا میده و لازمه ای ایمان مؤمن را رجا میدونه که این رجا باید در هر مؤمنی باشه که سبب بشه اون رجاش عمل صالحش انجام بده و شرک به خدا هم نیاره. خداش رو با کسی از دیگه عوض نکنه. این رجا هست. امید تام در خداونده که سبب بشه عمل نیک انجام بده. یعنی ما چون دوست داریم خدا ازمون راضی باشه، سر به سجدهش میذاریم، سر به فروتنش میذاریم. دوست داریم خدا ازمون راضی باشه. دوست داریم که خداوند ما رو وارد بهش بکنه تمع داریم امید داریم حال اگر ما این تمع را در مخلوقی از مخلوقات دونستیم که بیاد مثلا مریضمون رو شفا بده بیاد ما رو وارد بهش بکنه که باستیم میگن ای رسول الله من متوسل میشم به تو امیدم به توست میان متوسل میشم به رسول الله صلی الله علیه وسلم چکه بشیه این رجا شرک اکبره اختی که انسان بیاد رجاش و امیدش متعلق به یک مخلوق بکنه بیاد از اون مخلوق بخواهد رجایمون باید از خداوند باشه امید و تمعمون باید فقط به خداوند باشه یعنی در اون اعمالی که انجام میدیم در اون راز نیازی که انجام میدیم فقط تمعمون خود خدا باشه و رضایت خودش نه رضایت مخلوق یعنی هدفمون در عبادتمون در اطاعتی که انجام میدیم فقط رضایت خدا باشه و دلیل توکلین قوله تعالى وعلى الله فتوكل ان كنتم مؤمنين وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه بحث توكل مجلسي گذشته كردي فقط از باب تعريفش توكل در اساس در لغتش بمعنى معناي اعتماد فدار السلاح الشرعيش اعتماد به خداوند با اسبابي که گذاشته سببهايی گذاشته مثلا توصل به خداوند با إن لله تسعة وتسعة اسماء من أحصاها دخل الجنة خذنا ودونه تيسر كثي إحسابكون عملونه أبوكنا خذش الشيء بينشتى تواصل باسماء خضوان تواصل بصفات خضوان أفعال خضوان الله مصلح على محمد وعلى آل محمد كما صلّيته على إبراهيم هم تكبر إبراهيم سلوات دادي بفعل خضوان دينج سلوات دادي محمد مسلوات الله عليه وسلم رهشك أنوع دجال دادي بجري إن شاء الله فهادم پس توکل اعتماد بر خداوند با اتخاذ اسباب، یعنی با گرفتن سبب و وسیله اون ای که خداوند قرار داده حالا چی میخواد اون وسیله کونی باشه یا اون وسیله شرقی باشه و علالله فتوکلو ان کنتم مؤمنین اگر مؤمنید بر الله توکل کنید بر الله توکل کنید ولی خداوند وقتی که میگه بر الله توکل کنید بر الله توکل کنید یعنی چی؟ کنید امر دیگه درسته؟ دستوره. آیا عبادت هست یا نیست؟ خداوند به چیزی که دستور میده اون امر میشه تعبودی. اگر الله جل شانو به چیزی دستور بده اون چیز میشه عبادت. پس توکل اینو عبادت یک نوع مسئله دنیوی نیست. يجنو مسائله شرعيه حسب كل اعتماد بره الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أجر مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه أجر كسبر الله تبى كل بكونه الله بره اشكافيه تبى كل بارفودان عن وعدره ينو تبى كل تبى يعني در سر هم وترك ما در بحث تاس داشت انسان فقط اعتمادش بر خداونده و از کسی جز خداوند تمع نداره و نمیترسه اعتمادش بر خداونده میگه من مثلا بالفرس حرف حق را میگم میشه ما الان حرف حق را میزنیم توکلمون اعتمادمون بر خداونده بدونی که به کسی بدوی را بگیم بدونی که بخوام کسی را تفسیر بکنیم و تبدیع بکنیم کاری به اشخاص نداریم ما بحثمون بحث فعله بحث اشخاص ما میخوام تطریب فعر را مشخص میکنیم اون افعالی که از سر میزنه. که این افعال درسته یا نادرسته الان ما راجع, راجع به مسائل داریم صحبت میکنیم الان عبادت های قلبی که برمیگرده به قلب الان ترس داشتیم بعد از اونم مسئله رجا داشتیم الانم مسئله توکل بر خدا داریم که خودش خود این نوع توکل سه نوع توکل ما داریم یک نوع که خاص خداونده و اونم توکل گفتی توکل سره که خاص خدابنده نباید به مخلوقی غیر از خداوند اعتماد بشه یعنی اون در اون مسئله باید خاصتا و به ویژه بر الله متوکل بشیم مثل در بحث توسل که یک نوع توکل هست خودش به ذات خودش مثلا بالفرز ما میاییم به اسما و صفات خدابند یا به اون وسائلی که گذاشته وسایل سائل شرعی میشیم و اعتماد میکنیم تا اینکه دعای ما سجابت بشه حال اگر شخصی اومد متوسط شد به یک وسیله غیر مشروع اعتماد کرد به یک وسیله غیر مشروع اومد بر مرده یه توکل کرد اعتمادش رو به مرده امیدم به تو هست همون بحث رجاع هم که در ضمن این مسئله وارد میشه بر بحث توکل امیدم به تو هست این مرده که مشکل هم را حل بکنیم نصیبت هم را حل بکنیم این نوع دیگه اعتماد اعتماد شرکی هست اعتماد مخلوق در جایی که جز خالق نمیتونه اون مشکل را حل بکنه من همیشه این مسال میزنم یعنی چیزی که واقعیتش رو من دیدم یه سوار تنرو بودیم بعد خیلی هوا طوفانی شد چند نفر آدم های مسنی بودن توی اون تنرو وقتی که موجها اومد گفتن یا الله یا الله بعد یکی دو دقیقه نگذشت که شروع کردن یک امام، ای فلی، ای فلانی به دادمون برس. اینجا روا بکنید چه چی, چی سبب شد که این انصراف اعتقادی پیش بیاد. الله را رها بکنن؟ الله را رها بکنن بچسبن به مخلوق. چرا اعتماد کردن به مخلوق؟ به خاطر شرک در اسماء شرک در ربوبیت که خود به خود منجر شده به چی؟ شرک در الوهیت عبادت. وقتی که صفات خالق رو دادن ای قیوم و نمیدان عالم الغیب و سمیع و بصیر و حلیم و, و این صفات خاص خداونده دادم به مخلوق, مخلوق هم شد شریک خدا یعنی مثل خدا در این چیزها دیگه اون شخص دیگه میاد اعتماد میکنه به اون ولی که بله این ولی هم میتونه این ولی هم لطف داره به ما این ولی هم رحمت داره به ما این ولی هم میبینه از حال ما با خبره و تمامه قدرتشو داره داره تمام مندی های را میده که خود خاص خداونده این توکل وقتی که منصرف بشه از خداوند به مخلوق میشه چی؟ شرک اکبر یا از غر؟ شرک اکبر بدون شک میشه شرک اکبر این اعتماد به مخلوق که انسان بیاس یا،, یا صدا بزنه یا فلانی یا فلانی کمکم کن یا فلانی به اسم تو بلند میشم یا فلانی به اسم تو شروع میکنم اگر غیر از الله باشه میشه چی؟ اعتماد بر مخلوق میشه شرک اکبر این او نوع اول you know, از انباع تبکل نوع دوم تبکل وله هفتن که نوع اول گفتیم خواست خدابنده که اگر منصرف بشه غیر خدابند میشه شرک اکبر یه نوع از انباعی که الله اینجا مثلا شارح میاره در شرح همه فراتت الاصول بحث اینه که انسان حرف حق را نزنه انسان بیاد به خاطر اون امرار معاشش مثل هم و قضیه رجایی که ما قبلا داشتیم به خاطر امرار معاش به خاطر دنیا به خاطر اینکه اعتمادش صرف اسباب شده مشیعت خدا رو در نظر نگیره اینجا اون شخص مترتکه حرام شده. مثلا بالساز شخص میگه که الان مثلا بالفرد من برم خواستگاری نرم خواستگاری نه به من که نمیدن نه نمیشه نه خدا که من رو دوست نداره خدا که به من توفیق نمیده من که نحسم یا این روز که نحسه اعتماد بر چی هست اعتماد بر اسباب صرف اسباب یه خدا رو کناه داشته شخص کن اسباب اسباب دنیاوی و ما إلا الله، یعنی در صورتی که یعنی اون چیزی که شما میخواید متعل... صورت میگیره اگر خدا بخواد متعلق مشیعت خدا بنده شخص بیاد مشیت خدا را نادیده میگیره مثلا از این چیزهایی که به ما در دوران خودمان الان رخ میده زیاده تو جامعه میگه که من بچه دار بشم زندگی این همه هزینه آلا من ازدواج بکنم خونه زندگی جا از کجا بیارم این اعتماد صرف بر دنیاست یعنی انسان رزاق بودن خداوند. اعتماد بیگه خداوند رزاق, رزاق روزی رزانه. اینها را کنار بذاره. این نور اعتماد بر دنیا. صرف دنیا چیه شرک ازغره. حرامه. شخص مرتکب حرام شاید همین هم منجر بشه که سبب بشه انسان دوشاره شرک اتبار هم بشه. به مرور زمان اگر هم باشته بشه. اصلا باید بترسه انسان سبب را میگیره اتخاذ اسباب میکنه میره سعی و تلاشش میکنه برای کار کردن و بعد هم جلو بچه, بچه داری رو نمیگیره به این اعتماد داره که خداوند با اتخاذ اسبابش خداوند کمکش میکنه یاریش میکنه همه این که یاری خدا را نادیده بگیره صرف دنیاوی باشه صرف محض دنیا باشه که نه چون زمانه عوض شده چون نمیدونم، امروز نمیدونم اون چیز متطلبات زندگی یا اون چیزهایی که در زندگی ما بهش نیاز داریم زیاد شده و نمیدونم نیاز به فلان و فلان داریم بس در نتیجه من از این چیز امتناع کردم من ازدواج نمی کنم من بچه دار نمیشم میها جزء توکل های نامشروع و توکل های حرامه که ما باید ما با باید برایش غلبه بکنیم به خاطر همین اینجا مؤلف بعد از اینکه میگه علی الله توکل و تذکر بل الله فقط داشته باشید نه توکل بر مخلوق که نوع اول شامل میشد بعد از اون برای تبیین نوع دوم و آنم بحث توسل حرام می اینه آیه و من علی الله فهو حسب اگر کسی بر الله توکل بکنه اعتماد بکنه خدا کفایتش با... میکنه فهو حسبه. خدا براش کافیه الیس الله بکاف عبده آیا خدا برای بنده کافی نیست کافی نیست که انسان بهش اعتماد بکنه کافی نیست که انسان امیدش و تمعش فقط به خاطر خدا باشه مثلا من مثالی بهتون یه میزنم چون این مثال هم شاید دوباره تکرار بشه مثلا قدیما رست بود که میگفتن کسی پنجشنبه به سفر نره یا چهارشنبه چهارشنبه میگفتن مثلا شب هم ناخونه تو تا حالا هم میگن شب قسی ناخونه میزن میز پنجشنبه کسی به سفر نره. پنجشنبه یا شنبه نمیدونم یادم نیست دقیقاً ولی خب عرفا متفاوته این بحث نحفی هست. یکی از علما امروز این دو امروز دو تا مثال دارم میزنم که رب داره به این مسائل قلبی که در جریان روزمره خودمون تطبیق داره یعنی اون چیزی که مثالش که ما میبینیم. گفتم بهش که امروز نحسه آقا تو بیرون نرو. سوار الاغ شد افتاد پا شکست. مثلا دیدیم ما نگفتیم این روز نحسه اتخاذ اسباب ما گفتیم باید انسان اتخاذ اسباب بکنه آیا روز چهارشنبه بودن سبب برای اینکه شش بیفته خدا گفته یا علم طبیعی گفته که آقا ما مثلا شکر رو در آب بریزیم بشه شیرین چیز طبیعی یا ماورای طبیعت بحث اینکه آقا امروز نحسه بحث طبیعی نیست آقا دست تو آتش بزنی بسوزه یک بحث ماورای طبیعیه که آقا تو مثلا این روز چون نحسه میوفتی پاد میشکنه یا مثلا حادثه برات رخ میده این رخ میده خلاف توکل وقتی که انسان رو بیاره به اسباب یا رو بیاره به خرافات خلاف توکل به خداوند مثلا این شب بلند میشه برمیگرده یک ماه تو خونه میخوابه پاش خوب شد دوباره سفر اونارو میشه میگه من باید این قاعده رو خورد بکنم این خرافات رو خورد بکنم و من یتوکل علی الله فهو حسبه خدا برای انسان کافیه این اسباب اینها همه خرافات من بهش اعتماد نمی اعتماد من به بخراف... خرافات نیست به خداوند تاست باز میافت دستش خورد میشه بار دهم دوباره خوب میشه سرش خورد میشه می این ده بار این عالم این کار رو انجام داد تا بار یازدهم سوار الاغ شد سالم رفت سالم اومد گفت ها اگر نخت بود که بود همیشه نخت چرا من سالم موندم چون هر بار این بنده خدا میافتاد بهش میگفتن دیدی دی. حرف ما حق بود پیویش تکرار میکرد خود به خود من خودم تو یک مسافرتی بودم و خواستیم که یه خرید انجام بدیم بعد من عطره زدم بعد اون طرف گفت صبر اومد سب صبر اود من که نش بودم اولین بار داشتن میشتم تو بغیر از بندر من نشیده بودم. گفت صبر اومد تعجه کردم گفتم صبری یعنی چی؟ گفت که نه خلاص که ما نمیخریم بریم بر بگردیم. هو جای قدر هزینه کردی تو اومدی بخری به چیز رو بخری گفت که نه دیگه صبر اومد. این زیادا من چند بار صحبت بودم بینم طرف اسکله که سوارتون رو بشم. میام سوار بشم یکی عطه میزنه پنشیش نفر با هم بر میگردن سبر اومد یعنی نحسی اومد فران اگر کسی عطه زد این خرافات هست میگن فران والا اون شخص که گفت که سبر اومد گفت صبر اومد یعنی چی از کجا آوردی این نحسی گفت که من تجربه به مشخص کرده یعنی اصلا من هر باری خواستم یک کاری انجام, انجام بدم، اگر صبر اومده باشه. دیگه من با نموفقیت مواجه می شدم بایدون چه رفتی داره خداوند تا این تکییز میکنه، کنه که ضرر و نفت می رسونه چه کار داره به اون اصل زنیتون اصل ست, ست چه رفتی داره اصلا به این که آقا شما سرپا بخورید سرتون جشکنه یا رو قرب باشه حالا چرا این همه سوار تنرو رو شن روزانه هزاران نفر توی رو و خارن از تنرو اصل می زنن هیچی نمیاد. حالا یه نفر احسازت حالا براشو مصیبت پیش میاد باید بر بگرده که شاید غرف بشن این حرفی که ابراهیم به قومش میزنه و کیف اخاف و ما اشوتم دهد من چونه بترسم؟ شما از نمی نمیترسی دارید از مخلوق دارید میترسی توکلتون من مخلوق و سبحانت الله بحمده که صدی اللہ علی محمد و علی محمد